گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد بسوختیم در این آرزوی خام و نشد بلاغه گفت شبی میره مجلس تو شوم شدم به رغبت خیشش اشکم این غلام نشد پیام داد که خواهم نشست وارندان به شد به رندی و دردی کشیم نامو نشد رباستر برگر میتفد کبوتر دل که دید در ره خود تاب و پیچ دام و نشد بدان حوست که به مستی مستیب بوسمان لب لع چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد به کوی عشق من بی دلیل راه قدم که من به خیش نمودم صد احتمام و نشد فقان که در طلب گنج نامه مقصود شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد دریق و درد که در جستجوی گنج حضور وسی شدم به گدایی بر کرام و نشد هزار حیل برانگیخت حافظ از سر فکر در آن حبس که شود آن نگار رام و نشد